یک شب در لنگیربیین بازگشت به یک کچک لنگیربیین دو ساعت طول کشید. آنجا شمالی ترین شهر نروژ و البته تمام دنیا بود و جمعیتی در حدود دو هزار نفر داشت. نورا این اطلاعات را در زندگی اصلیش هم می دانست. به هر حال از یازده سالگی شیفته این بخش از دنیا بود. اما اطلاعاتش چندان از نوشته‌های توی مقالات و مجلات فراتر نمی‌رفت و همین باعث می‌شد برای مکالماتش نگران باشد. مسیر بازگشت با کشتی بدون مشکل پیش رفت چون سکوتش درباره نمونه‌های سنگ و یخ و گیاه به دست آمده در مأموریت یا ناتوانیش از درک عباراتی همچون بستر سنگی بازالت خدار و نیز ایزوتوپ‌های پسایخچالی را پای این گذاشتند که از روبرو شدن با خرس قطبی شوکه شده است. حقیقت داشت که نورا به نوعی شوکه شده بود، اما نه آن شوکی که همکارانش تصور می کردند. شوکه شدنش به این خاطر نبود که فهمیده باشد تا پای مرگ رفته. از همان زمان که پا به کتابخانه نیمه شب گذاشت، یک پایش لب گور بود. نه از این شکه شده بود که احساس کرد قرار است زنده بماند یا دست کم می توانست میل به زنده ماندن را دوباره تصور کند میخواست زندگی سودمندی داشته باشد طبق نظریه فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم برای جهان زندگی انسان فرق چندانی با زندگی صدفی خوراکی ندارد اما اگر به اندازه اهمیت داشته که دیوید هیوم دربارش بنویسد پس شاید به اندازه هم مهم هست که بشود تصمیم گرفت کاری خوب و درست و حسابی با آن کرد و مثلا برای حفظ حیات در تمام شکلهایش اقدامی کرد آنطور که فهمیده بود کار نورای این زندگی و همکاران محققش به سرعت زوب یخها و یخچالهای این منطقه وابسته بود تا اینگونه بتوانند سرعت تغییرات اقلیمی را حساب کنند. البته جزئیات بیشتری داشت اما آنچه نورا از کل موضوع درک می کرد همین بود. بنابراین در این زندگی داشت سهم خودش را برای نجات سیاره انجام میداد. یا دست کم نابودی پیوسته سیاره را زیر نظر داشت تا بتواند درباره بحرانهای محیطی به مردم جهان هشدار دهد. نورا تصور می کرد این شغل پتانسیل این را دارد که ناراحت کننده باشد. اما در نهایت از انجامش حس خوبی به دست می آید. این شغل هدف و معنا داشت. بقیه هم تحت تاثیر داستان خرس قطبی قرار گرفته بودند. نورا برای خودش یک با قهرمان محسوب می شد. البته نه قهرمانی که در مسابقات شنای المپیک مدال آورده باشد. اما درست به همان اندازه لذت بخش اینگریت بازویش را دور او انداخته بود. تو مبارز قبل ای هستی. به نظر من باید روز پردل و جورتی تو و کشفیات احتمالا خیره کنندمون رو با یه غذای درست حسابی متمایز کنیم. البته با ودکا. نظر تو چیه پیتر؟ غذای درست حسابی؟ توی لانگیر مگه دارن؟ اینطور که معلوم شد بله داشتند. وقتی به خشکی رسیدن به کلبه ی چوبی شیکی به اسم گر و ولاگرت رفتند که کنار جاده ای خلوت در دل ساده و برف پوش قرار داشت. نورا نوشیدنی قطبی نوشید و همکارانش را با خوردن تنها غذای مخصوص گیاهخاران شگفت زده کرد چون در منوی رستوران غذاهایی مثل استیک گوزن شمالی و برگر گوزن الک هم پیدا میشد. شاید نورا خسته به نظر می رسید. چون چند تا از همکارانش این را به او گفتند اما شاید واقعا خسته بود چرا که در بحث ها و گفتگوهای آن شب هرگز احساس نمی کرد که بتواند با اعتماد به نفس کامل حرفی بزند حسی شبیه راننده تازه کاری در تقاطوی شلوغ داشت که با نگرانی منتظر بود تا قسمتی از مسیر خالی و امن شود هوگو هم بود هنوز هم به نظر نورا میامد آمد هوگو ترجیح می دهد در انتیب یا باشد. هر وقت هوگو به او خیره میشد نورا احساس میکرد زیر نظر قرار گرفته و معذب می میشد در مسیر روی سریعی که برای بازگشت به اقامتگاهشان در خشکی داشتند که نورا را یاد خوابگاه های دانشگاه میانداخت البته چوبی و در میقیاسی کوچکتر و شمالیتر و سادهگراتر هوگو دوان دوان آمد تا با نورا هم قدم شود و کنارش راه برود گفت جالبه چی جالبه اینکه امروز صبح موقع صبحونه منو نشناختی چطور مگه؟ خود تو هم منو نمیشناختی؟ معلومه که میشناختمت دیروز دو ساعت با هم حرف زدیم؟ نورا احساس میکرد در تله افتاده واقعا؟ موقع صبحونه قبل از اینکه بیام پیشد زیر نظر گرفتم تو متوجه شدم که امروز تغییر کردی؟ این کار ترسناکه هگو منظورم زیر نظر گرفتن زنان موقع صبحونه است متوجه چیز شدم. نرا شالش را روی صورت بالا آورد. هوا خیلی سرده. میشه فردا در این باره حرف بزنی؟ متوجه شدم که بداه پردازی میکنی. تمام روز درباره هر حرفی که میزنن نظر خاصی نمیدی. این حرف درست نیست. فقط ترسیدم. میدونی که به خاطر خیرسه. نه سانس پسه. منظورم قبل از ماجرای خیرسه. بعد از اون هم. و تمام روز. اصلا نمیدونم چی میگی. نگاه خاصی وجود داره هم توی چشم بقیه دیدمش هر که ببینم میشناسمش اصلا نمیدونم چی میگی یخچالا چرا تپش دارن؟ چی؟ موضوع مطالعاتت همینه اصلا برای همین اینجایی مگه نه؟ توی این علم هنوز به جواب ثابتی برای سوالت نرسیدیم خیلی خوب یکی از یخچالایی اطراف اینجا رو نام ببر یخچالا اسم دارن یکیشونو بگو کون ناسور ستبرین، اینا برای تاشنان، از این مکالمه خوشم نمیاد، چون همون آدمی نیستی که دیروز بودی، مگه نه؟ نورا سری گفت، هیچ آدم دیروز نیستیم، مغزمون همیشه در حال تغییره، بهش میگن، این پذیری عصبی، خواهش میکنم، دیگه سعی نکن برای یه یخچال شناس، در برای یخچال توضیح بدی، هوگو، هوگو اندکی یقب نشست، و این باعث شد نورا احساس گناه کنه. یک دقیقه میانشان سکوت شد و فقط صدای خورد شدن برف زیر پاهایشان به گوش می رسید تقریبا به اقامتگاه رسیده بودند و بقیه فاصله کمی بان داشتند اما بعد هوگو حرفش را زد منم مثل تو اموع نورا. به زندگیهایی سر میزنم که ما خودم نیستن پنج روزه که توی این زندگی هم. اما خیلی زندگی های دیگر رو هم دیدم یه موقعیت خیلی کمیاب به هم داده شده که اجازه میده این کار رو انجام بدم عدتیه که بین زندگی های مختلف جا به جا اینگرید بازوی نورا را گرفت. گفت، هنوز یکم ودکا دارم. دیگه به در رسیده بودند. کارت ورودش را با دست روی اسکنر در گرفت. در باز شد. هوگو انگار که دارد توتعی می زیر لب گفت. ببین، اگه خاصی بیشتر بدونی، پنج دقیقه دیگه توی آشپزخونه عمومی منتظرتم. نورا احساس کرد قلبش سریعتر از قبل به تپش افتاده این بار ملاقه یا قبلمه نداشت که به همدیگر دیگر بکود از این مرد حقگناام خوشش نمی‌آمد، اما کنج کافتن از آن بود که نخواهد حرفش را گوش کند همچنین میخواست بداند میتواند به او اعتماد کند یا نه گفت باشه میام. انتظارات نورا همیشه با پذیرفتن خودش مشکل داشت. از زمانی که یادش می‌آمد، احساس کمبود میکرد. پدر و مادرش هم که هر دو کمبودهای خودشان را داشتند، این احساس او را تقویت میکردند نورا حالا سعی می کرد در ذهن تصور کند که پذیرفتن کامل خودش و تمام اشتباهاتی که کرده بود، تمام زخم و نشانه‌های روی بدنش، تمام رؤیاهایی که که آنها نرسیده بود یا درد که حس کرده بود و تمام حوث و امیالی که سرکوب کرده بود، چه احساسی خواهد داشت؟ پذیرفتن تمام اینها را در ذهنش تصور کرد. درست همانطور که طبیعت را می‌پذیرفت. همانطور که یخچال ها و توتی دریایی و آمدن نهنگ ها روی سطح آب را میپذیرفت. اینطور تصور کرد که خودش را فقط به عنوان یکی از عجایب جالب طبیعت ببیند. فقط حیوان باهوش عادی دیگری که نهایت تلاشش را میگند. به همین روش شیوه آزادی را تصور کرد. مرگو زندگی و تابع موج کوانتومی برای هوگو کتابخانه نبود هوگو گفت یه ویدیو کلوبه. به کابینت به ظاهر ارزان قیمتی تکیه داده بود که قهوه را در آن نگه می‌داشتند. دقیقا شبیه یه ویدیو که توی زادگاهم توی هومه لیون می‌رفتم. اسمش ویدئو لومیر بود برادران لومیر واسه یه مردم لیون مثل قهرمان ها هستند و خیلی چیزها به خاطر اونها نامگذاری شده. سینما رو توی لیون اختراع کردن بگذریم حرفم چیز دیگه ای بود چیزی که میخواستم بگم اینه که هر زندگی انتخاب میکنم یه فیلم VHS قدیمی که توی مغازه پخشش میکنم و به محض اینکه فیلم شروع میشه منم ناپدید میشم. نورا سعی کرد جلوی خندش را بگیرد. خوگو که اندکی آزرده شده بود پرسید به چی میخندی؟ هیچی هیچی فقط به نظرم یکم جالب بود که ویدو کلوب باشه جدی؟ کتاب بودنش به نظرت خیلی منطقیه؟ خب آره منطقی تره منظورم اینه که هنوزم همه کتاب میخونن ولی این روزا دیگه کی میره از ویدیو کلوب فیلم VHS بگیره؟ جالبه نمیدونستم چیزی به اسم فخر فروشی میان حیاتی هم داریم از دیدنت کلی چیز یاد گرفتم ببخشید هوگو خیلی خوب یه سوال منطقی می پرسم. کسی دیگه هم اونجا هست یعنی یکی که توی انتخاب زندگی ها کمکت کنه هوگو با سر تایید کرد اه آها آره امو فیلیپ هم سالها پیش فوت کرد حتی توی دوران زندگیش هم توی ویدیو کلوب کار خیلی غیرمنطقیه. نورا درباره خانم علم به او گفت هوگو به مسخره گفت کتاب داره مدرسه اینم خنده داره که نورا حرفش را نادیده گرفت. به نظرت روحن؟ روح راهنما فرشته نگهبان؟ چیان؟ خیلی مزحک بود که وسط یک مرکز علمی تحقیقاتی نشسته بودند و این حرفها را میزدند. هوگو انگار که میخواست مناسب ترین کلمه را از توی هوا پیدا کند اشاره کرد و گفت اونا یه جور تفسیر هم. تفسیر؟ هوگو گفت من افراد دیگهای مثل خودمون رو هم دیدم میدونی خیلی وقته که توی این دنیای میانه هستم چند تا دیگه از لغزنده ها رو هم دیدم خودم این اسم روشون گذاشتم منظورم روی خودمونه لغزنده خود ماییم یه زندگی اصلی داریم که توش یه جایی بیهوش افتادیم و بین مرگ و زندگی هستیم بعد به یه جا میرسیم همیشه هم جای متفاوتیه. کتابخونه، ویدیو کلوب، نمایشگاه این کازینو رستوران به نظرت این چه معنایی داره؟ نورا شانه بالا انداخت و در حالی که به ی هم سیستم گرایشی مرکزی گوش میداد فکر کرده که همه اینا علکیه. هیچ کدومشون واقعی نیست. نه. چون فرم اصلی همیشه یکسانه. مثلا همیشه یه نفر دیگه هم اونجاست. یه راهنما، اما فقط یه نفر همیشه هم کسیه که توی زمان خاصی از زندگی اون شخص بهش کمک کرده. محیط دنیاش هم همیشه جایی با اهمیت احساسی خاصه. معمولا هم درباره زندگی اصلی و شاخه های منشعب از اون صحبت میشه. ها یاد زمانی افتاد که خانم علم بعد از مرگ پدرش او را تسلی داده بود. همان زمانی که پیشش ماند و آرامش کرد. آن لحظه احتمالاً نورا بیشترین محبت را در تمام عمرش دریافت کرده بود. هوگو ادامه داد: همیشه هم بینهایت انتخاب وجود داره. تعداد بینهایتی فیلم ویدئویی یا کتاب یا نقاشی یا غذا خب، من آدم دانشمندیم. توی زندگی های زیادی هم دانشمند بودم. توی زندگی اصلیم مدرک دانشگاهی زیستشناسی دارم. توی زندگی دیگه هم که شی جایزه نوبل رو هم برنده شدم حتی یه زیست دریایی هم بودم که سعی می کرد از صد بزرگ مرجانی استرالیا محافظت کنه. اما نقطه ضعفم همیشه فیزیک بود اولش اصلا نمی چطوری باید بفهمم چه بلایی داره سرم میاد؟ تا اینکه توی یکی از زندگیام با زنی آشنا شدم که همین اتفاق خودش براش میافتاد و توی زندگی اصلیش دانشمند فیزیک کوانتوم بود. پروفسور دومینیک بیسه توی دانشگاه همه چیز رو برام توضیح داد. تفسیر دنیا چندگانه فیزیک کوانتوم و این یعنی ما مردی با چهره مهربان، پوست صورتی و خرمایی خورمایی که نورا اسمش را نمیدانست وارد آشپسخانه شد تا فنجان قهوش را آب بکشد. بعد هم به آنها لبخند زد. با لحشه ملایم آمریکایی یا شاید هم کانادایی گفت صبح میبینمتون بعد سلانه سلانه با دمپایی های فرشیش قدم زد و دور شد. نورا گفت آره. هوگو گفت می بینمت. بعد با صدایی آرام تر از قبل برگشت سر حرفش. تابه کیهانی واقعی نورا. پروفسور بیزه گفت. چی؟ هوگو یک انگشتش را بالا گرفت. از آن حرکت های نسبتاً آزاردهنده که میگفت یک لحظه صبر کن. نورا با میل به گرفتن انگشت او و پیچاندنش مقابله کرد. اروین شرودینگر، همونی که گربه داشت؟ آره همونی که گربه داشت میگه که توی فیزیک کوانتوم تمام احتمالات دگر وارعی همه همزمان روخ میدن همه با هم توی یه مکان بر هم نهی کوانتومی گربه توی جبه هم زنده است و هم مرده میتونی جبه رو باز کنی و هم زنده ببینی شا هم مرده اصلا قضیه همینه اما از یه نظرم حتی بعد از باز کردن جبه گربه هنوز هم زنده است و هم مرده، تمام جهان ها روی همدیگه قرار دارند. مثل میلیون ها تصویر کشیده شده روی کاغذ نازک طراحی که توی یه قاب قرار گرفتن و هر کدوم ذره ای نسبت به بقیه متفاوته. تفسیر دنیاهای های چندگانه فیزیک کوانتوم اینطور میگه که بینهایت جهان موازی منشعب از همدیگه روی هم قرار دارن. توی هر لحظه زندگید داری وارد یه جهان جدید میشی. با هر تصمیمی که میگیری. باور اولیه این بود که نمیشه بین این جهان ها رفت و آمد کرد یا چیزی رو مخابره کرد. حتی با اینکه که همشون توی یه مکان و به معنای واقعی کلمه فقط چند میلیمتر دورتر از مادرن روخ میدن. پس ما چی؟ ما که داریم این کارو دقیقا، من اینجام اما میدونم که اینجام نیستم. همچنین میدونم که توی یه بیمارستان توی پاریس روی تخت راست کشیدم و دچار برآمدگی برامدگی قلبی شدم توی آریزونا بازی می میکنم توی جنوب هند سفر میکنم توی لیون نوشیدنی می نوشم و توی ساحل لاجوردی سوار یه قایقم میدونستم واقعا نورا دریافت که هوگو در نظرش مرد زیبایی است قدم زدن توی بلوار کروازت شهر کن بیشتر بهت میاد تا یه ماجراجویی توی قطب شمال. هوگو دست راستش را مثل ستاره دریایی باز کرد. پنج روز. پنج روزه که توی این زندگی هم. این بیشترین این رکوردمه شاید قرار توی همین زندگی بمونم. جالبه قرار حسابی سرما بکشی. از کجا منو؟ شاید تو هم همینجا بمونی. منظورم اینه که اگه خیرسه نتونست تو رو به کتاب برگردونه شاید هیچ چیز دیگه این نتونه. شروع کرد به پر کردن کتری. از نظر علمی همیشه گفته شده که فضای خاکستری بین مرگ و زندگی جای مرموزیه. جای خاصی که ما دیگه نه اینیم و نه اون یا شاید هر دوتاشیم زنده و مرده. توی همون لحظه بین این دوگانگی، بعضی وقتا، فقط بعضی وقتا، ما هم مثل گربه شرودینگر میشیم و نه تنها میتونیم هم زنده و هم مرده باشیم، بلکه میتونیم به هر احتمال کوانتومی ممکن که با تابع موج کوانتومی همخانی داره دست پیدا کنیم. مثلا ساعت یک صبح توی عشبسخونه عمومی لنگربیه نشسته باشیم و حرف بزنیم، نوراه داشت به تمام حرفای او فکر میکرده. یاد وولز افتاد که زیر تخت بی حرکت مانده و مرده بود. همانطور که کف خیابان افتاده و مرده بود. اما بعضی وقتا گربه در هر صورت مرده. چی؟ هیچی. فقط گربه مرده. یه زندگی دیگر رو هم امتحان کردم و دیدم حتی توی اون زندگی هم مرده. هم انگیزه. من هم تجربه یکسانی درباره یه سگ لابرادور داشتم. اما نکته مهم ماجرا اینه که آدم های دیگه هم مثل ما هستن. من زندگی زیادی رو تجربه کردم و چند تایی از این آدم ها رو دیدم. بعضی وقتا فقط همین که حقیقت وجود خودت رو با صدای بلند بگی برای پیدا کردن بقیه افراد شبیه به خودت کافیه. خیلی عجیبه که بدونی آدم های دیگه ای هم هستن که مثل ما. گفتی اسممون چی بود؟ لغزنده؟ آره که مثل ما نقزندن. خب، البته که ممکنه اما فکر می کنم خیلی کمیاب باشیم. یکی از چیزهایی که توی ملاقات با این ده دوازده نفر متوجه شدم اینه که همشون همسن ما هستن. همه سی یا چهل یا پ و چند ساله ان البته یکیشون ۹ ساله بود همشون هم شدیددا آرزوی اینو داشتن که تعاسکی متفاوتی میگرفتن حسرت داشتن. یهشون فکر میکردن اگه بمیرن بهتره. اما همزمان دوست داشتن به شکل دیگه از خودشون زندگی کنن. زندگی شهر و دینگری. هم زنده و هم مرده البته توی ذهن خودت دقیقا هر بلایی هم که اون حسرت ها سر ذهنمون آورد هر چطوری بگم هر اتفاق شیمیایی که توی شبکه عصبیمون رخ داد و باعث شد حسرت برای زندگی رو با مرگ اشتباه بگیریم به طریقی ما رو به این وضعیت انداخت که وسطشون گیر بیافتیم آبی توی کتری کم کم مثل افکار نورا داشت به جوش می و پر و سر و صدا شده بود. چرا همیشه یه نفر دیگر رو همونجا می توی کتابخونه یا حالا هر جا؟ و بالا انداخته. اگه آدم مذهبی بودم می اون شخص خود خود آست و از اونجا که خدا احتمالا جوریه که ما نمیتونیم ببینیمش یا درکش کنیم به شکل کسی در میاد که توی زندگیمون به عنوان آدم خوبی اگم آدم مذهبی نبودم که نیستم، میگفتم مغز انسان توانایی درک پیچیدگی تابه موج کوانتومی رو نداره و برای همین اون پیچیدگی رو به شکل چیزی که براش درک پذیر باشه ترجمه میکنه. مثل کتابدار توی کتاب خونه یا اموی مهربون توی ویدیو و غیره. نورا قبلا درباره جهانهای موازی خوانده بود و کمی درباره روانشناسی گشتالت میدانست. در اینکه مغز انسان چطور اطلاعات پیچیده درباره دنیا را دریافت و بعد ساده سازی می کند. بنابراین وقتی انسانی به درخت نگاه می کند، مغزش ترکیب پیچیده و ظریف برک ها و شاخه ها را چیزی خاص به نام درخت ترجمه می کند. اصلا انسان بودن یعنی همین که پیوسته دنیای اطرافت را به شکل داستانی درک پذیر ساده کنی تا سختی نکشی. نورا میدانست در تمام چیزهایی که انسانها میبینند یک جور ساده سازی رخ داده است. انسانها دنیا را سبودی می بینند. همین هم ساده سازی شده است. انسانها اساساً موجوداتی با ذهنیت محدودند که همه چیز را برای ساده شدن تعمین میدهند. مغزشان در وضعیت خودکار فعالیت میکند و در ذهنشان خیابان پرپیچ و خم را صاف میبینند. به همین خاطر هم هست که همیشه گم میشوند. نورا گفت درست مثل این حقیقت که آدما ها هیچ وقت نمیتونن به محض نگاه کردن حرکت عقربه دوم ساعت رو ببینن چی؟ نورا متوجه شد که ساعت هوگو آنالوگ است خودت امتحان کن خیلی ساده نمیتونی ببینیش ذهنمون چیزی رو که درک نکره نمیتونه ببینه هوگو در حالی که به ساعتش خیره شده بود سری به تعیید تکان داد نورا گفت پس چیزی که بین جهان ها وجود داره به احتمال زیاد کتابخونه نیست. اما کتابخونه بودنش صرفا ساده ترین حالتی بوده که من می هم درکش کنم. نظر من اینه. نمونه ساده سازی شده حقیقت رو می‌بینم. کتابخونه فقط یه استعاره ذهنیه. اصلا تمام ماجرا همینه. هوگو گفت. جالب نیست؟ لورا آه کشید. توی زندگی قبلی با بابام حرف زدم که مرده. هوگو در ظرف قهوه را باز کرد و با قاشق پودر قهوه را در دو لیوان ریخت. قهوه هم نمیخوردم، به جش چایی نعنا میخوردم. و شدبک به نظر میاد. قابل تحمل بود. هوگو گفت. یه چیز عجیب دیگه اینه که در هر لحظه از این مکالمه ممکنه تو یا من ناپدید بشیم. تا حالا این اتفاقو به چشم دیدی؟ نورا لیوانی را که هوگو به او داد گرفت آره چند بار یه جوریه اما هیچ کس دیگه ای متوجه نمیشه فقط یه کم خاطرات یه روز اخیر رو فراموش میکنن اما اونقدر رو اتفاق عجیبی نمیافته اگه همین الان برگردی به کتابخونه و من هنوز توی آشپس با تو حرف بزنم یه چیز توی این مایه ها میگی که یه کم گیر شدم در باره چی حرف میزدیم؟ بعد هم من میفهمم چه اتفاقی افتاده و میگم داشتیم در باره حرف عرف میزدیم تو هم شروع میکنی به بمبارون من با اطلاعاتی درباره باره یخشانها. مغزت خفرهای خالی حافظت رو پر میکنه و برای اتفاقهایی که رخ داده یه داستان میسازه. آره اما قضیه خیرس قطبی یا شام شب چی میشه؟ من یا همین نورایی که اینجوری هسته یادش میمونه که من چی خوردم؟ نالوزمان اما اتفاق افتادنش رو هم دیدم. چه که مغز چطور میتونه جاهای خالیش رو با اطلاعات ساختگی پر کنه یا اصلا اتفاقهای رخ داده رو فراموش کنه. خب من چطوری بودم؟ منظورم دیروزه هوگو به چشم او خیره شد. چشمان زیبایی داشت. نورا لحظه‌ای حسی شبیه ماهوره‌ای داشت که به سمت زمین کشیده شده و در مدار آن گیر افتاده. دلپذیر، جزا باهوش، زیبا، مثل همین حالا، نورا با خندش حرف او را پس زد چقدر فرانسوی جواب ددی؟ مکسی معذب کننده برقرار شد سرانجام نورا گفت تا الان چند زندگی رو تجربه کردی؟ خیلی، از دیکه سی تا سی تا؟ خیلی چیز رو تجربه کردم به تمام قاره های زمین رفتم با این حال هیچ‌وقت به زندگی نرسیدم که جذبم کنه دیگه قبول کردم که تا ابد همینطوری بمونم فکر نمی کنم، هیچ هیچ‌وقت زندگی پیدا کنم که واقعاً بخوام توش بمونم زیادی گنجکاوم میشم اشتیاقم به تجربه کردن یه زندگی دیگه خیلی زیاده لازمم نیست اونطوری نگام کنیم. چیز غم نیست توی این برزخ واسه خودم خوشم اما اگه یه روز دیگه ویدیو کلیپی وجود نداشته باشه چی نورا یاد خانمه علم افتاد که وحشت زده پشت کامپیوتر نشسته بود و لامپ بالای سرش سوسو میزدند اگه قبل از پیدا کردن زندگی که میخوای یه روز یه دفعه ناپدید بشی چی؟ هوگو شانه بالا انداخت. خب می میرم. در هر صورت توی زندگی که قبلا داشتم هم میمردم راستشو بخوای از لغزنده بودن خوشم میاد. از نقص و ناکاملی خوشم میاد. دوست دارم مرگ رو به عنوان یکی از گزینه ممکن داشته باشم. دوست ندارم هیچ وقت کوتای و یه جا بمونم. به نظرم شرایط من فرق میکنه. فکر کنم مریم نزدیک تره. اگه خیلی زود زندگی پیدا نکنم و توش مستقر نشم واسه همیشه میمیرم. میرم. مشکلی را که دفعه پیش هنگام برگشت به کتابخانه برایش پیش آمده بود توضیح داد. آها، آره خوب اینطوری بعد میشه اما ممکنه بعدم نباشه. اینو درک می که بینهایت نهایت احتمال وجود داره منظورم اینه که جهان موازی فقط چند تا جهان نیستن یه مشت جهان هم نیستن حتی کلی جهانم نیستن میلیون یا میلیاردها یا تریلیاردها ها جهان هم نیستن, نیستن. بینهایت جهان هستن حتی اونهایی که تو توشون هستی میتونی توی هر کدوم از نمونه جهان هر چقدر هم جهان غیر منطقی و عجیبی باشه خودت باشی تنها صد راهت قوه تخیل خودته. میتونی حسابی توی برطرف کردن حسرتهاد خلقیت بخرش بدی. یه بار یکی از حسرت هام رو در برید تصمیمی که توی نوجوانی گرفته بودم برطرف کردم. دوست داشتم مهندس هوا فضا و فضانورد بشم. در نتیجه توی اون زندگی فضانورد شده بودم. نرفتم فضا اما تبدیل به کسی شدم که مدتی رو توی فضا بوده. چیزی که باید به خاطر بسپوری اینه که این یه موقعیت کمیاب و خاصه و میتونیم هر اشتباهی رو که کردیم جبران کنیم و هر زندگی رو که دوست داریم تجربه کنیم هر زندگی بلند پرواز باش میتونی هر چیزی که میخوای باشی چون توی یه زندگی دقیقا همون آدمی هستی که توی سر تصور میکنی نورا جرعی از قهوهش نوشید. میفهمم هوگو با حالتی خیرت گفت اما اگه همیشه دنبال معنای زندگی بگردی هرگز زندگی نمی کنی. داری یکی از جملات آلبکام رو نقل قول می کی. اوش رفتی. گرفتی. هوگو به او خیره شده بود. نورادیگر با شور و اشتیاق او نسبت به خودش مشکلی نداشت. اما نگران نشان دادن همان شور و اشتیاق از سمت خودش بود تا جایی که می توانست با لحنی بیاحساس و بدون آنکه به چشمان هوگو نگاه کند گفت. من دانشجوی فلسفه بودم هوگو حالا به اون نزدیک شده بود در نظر نورا رفتار او به یک اندازه آزاردهنده و جذاب بود تکبر و همچنین صمیمیتی داشت که باعث می شد بسته به شرایط نورا بخواهد هم به او سیلی بزند و هم ببوسدش هوگو گفت توی یه زندگی سال هاست که همدیگر رو می و ازدواج کردیم نورا به چشمان او خیره شده جواب داد دوی بیشتر زندگیام هم اصلا همدیگر رو نمیشنسیم. هم اما به نظر من نیست. واقعا. واقعا. نورا لبخند زد. ما خاص هستیم نورا. منتخبیم. هیچکس درکمون نمیکنه هیچ هیچکی هیچکی و درک نمیکنه کسی هم رو انتخاب نکرده. فقط به خاطر توی که من هنوز توی این زندگیام نورا جلو پرید و او را بوسید.